حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه به تر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازم با اش دل ببندی اجماع که دلم پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا از آج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام چطورین؟ خوبین؟ فرشید منافی هستم اینجا رادیو پس فردای شماره 995 امروز یک شمبه 16 هم اسفند ماه 1394 پنج و چار دقیقه آینده با شما ایم. خوبی خوشین سلامتی چی کارا میکنین چه خبرها خب جز امروز 5 تا بیشتر نمونده ها 5 تا بیشتر برنامه نمونده و امروز 995 و دوشنبه هفته ی آینده برنامه هزار من واسه یکم نگرانتونم یعنی انگار من نمیدونم دارین خودتونم رو مثلا کنترل میکنین ما از ناراحتی شما وقت ناراحت نشیم و این اره اینجوریه نه تو خودتون نریزین به خاطر خدا زنگ بزن قشنگ خودتون رو خالی کنین تخلیه کنین چون دی واقعا دیگه یش غیر از امروز دیگه 5 تا برنامه دیگه بریم دیگه بای بای پس فرد و همومه دیگه ای بابا ای بابا حالا باید بعدا بیشتر در این مورد تابعه میکنیم الان بریم سر موضوع برنامه امروزمون دیروز و این هفته داریم در مورد نوستالژی و خاطرات هفت دیروز در مورد نوستالژی کودکی حرف زدیم امروز میخوام در مورد خاطرات و نوستالژی عاشقانه و قلب تیر خورده و عشق اول و این مسائل و اینا دیگه با هم حرف بزنیم دیگه پس همین اول برنامه یک سلام مخصوص به همین مناسبت داریم کتنات همین اونایی که با نگاه اول عاشق شدن و شرایط به هر شکل اجازه نداد که این نگاه اول به نگاه دوم و سوم برسه بلکه از عشق فارق بشن و اینجوری شد که همونجور عاشق موندن و با یاد و خاطرات معشوق شب و روزشونو سر میکنن ای بابا تو رو خدا زیاد خاطرتون اذیت نکنید دیگه بالاخره یا خودش میاد یا یه ایمیلی اس ام یه چیزی بالاخره میاد ازش دیگه سخت نگیرید بهبهان زنگ میزنم میخواستم بگم که امروز برای اولین بار ما کولر رو روشن کردیم سر زودون هوا گرم بود ای. دلت حسابی آب تسامه از بهبهان خیلی ممنونم البته اینجا هم خب گوش شیطون کرد هوا داره کم کم گرم میشه البته نه اونقدر بعید میدونم حالا تا یه 3-4 ماه دیگه بخواد به مرحله کولر رو اینا برسه که اصلا اینجا کلن کولر معنی نداره کولر وجود نداره چه خبر سعید از و هوا؟ سلام سلام فرشی جان خوبی؟ چی شد آره، بالاخره؟ دیروز گفتی یه جایی قرار سیل بیاد آره، عرضه هنوز که خبری نیست اما امروز سازمان هوا هم یه حشدار و اختار آبا هوایی داده مه. و از کسایی که تو شرق استان و هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان زندگی می کنن خواسته که برای بارندگی فردا و پس فردا و جاری شدن سیل تو اون مناطق آماده باشن مه. البته حالا من نمیدونم منظور از آماده بودم برای سیلاب اینه که کلن برم مناطق مرتفعتر یا مثلا جلیغ نجات بپوشن چون, بر... <تصفيق> معلوم آره... چون برحال به توجه به بافت اون مناطق و بافت خونه ها به خصوص اون مناطق <تصفيق> بعید میدونم بشه کاری کرد یعنی مردم بتونن کاری بکنن کاری که نیاز به آمادگی از،, از پیش داشته باشه حال، امیدواریم که این بارندگی ها فردا و پس فردا تو این مناطق ختمه به خیر بشه امیدواریم و خسارت جانی و حالا تو مرحله بعد خسارت مالی برای کسی به بار نیاره در مورد تلفن این دوستمون اه... به گفته آره گرم گفتن کولر دا... روشن کردیم گرم شدن هوای بهبهان باید بهشون بگم که این مسئله مقطعیه و ما تو مناطق شمالی و شمال غربی و کشور کاهش دما رو داشتیم و این کاهش دما از هفته بعد بیشتر مناطق کشور رو تحت تاثیر قرار میده این دوستمون هم متاسفانه احتمالاً به زودی بعد رو خاموش کنه خیلی ممنونم سعید از این خبر خوشحال خوش شدم شما که دست ایلی خانمو گذاشید تو دست آقاشون دست بله. سارفانم هم بزنید تو دست ما شیری میتونم محفوظه آقا که کی, کی گفته من دست کیا گذاشتم تو دست کسیه چرا حرف دو تا بله گفته بله اه. سر صفر عقد نگفته که نه نفی شما اه. کجا میدونین من دارم خودمو میکشم سامیو زنش بدم بعد الی و سارا اصلا اهل ازدواج و این برنامه ها نیستن آشه. از را رسیده احلی نرسیده احلی. میخوان رو هوا ببرند. ای بابا آقای منافی بله. شما کجا میدونیم اهل چی هستم اهل چی نیستم ببین شما الیجانت از... سارا جان هر اهل هر هم می‌خوین باشین باشین اینجا فعلا کارآموزین دوستان دخترای ما میخوان درسشون رو ادامه بدن تموم شد تموم شد حالا بعد کارآموزی هر برنامه داشته باشین دیگه هم لطفن. چه پسرای زشت چه خوشتیپ زنگ نزنن برنامه خواستگاری کنن مرسی Ah. yes. with yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. yes, yes, yes, yes, yes, yes, Yes سعید حالا آره که نرفتی راجب به اون خبر علی صادقی اتفاق بامزه عليهلی افتاده بود اونم آره, آره فررشید خیلی جالب و حالا ناراحت کننده هم هست در نوع خودش مثل اینکه هنرپی هاسلبیتی هم بعضی وقت کلا برداره میشن چ وقتیش ظاهرا علی صادقی که خب می شناستیمش هنر پیش فیلم کمدیه یه خونه ای رو میخره که حالا بوش کنین خودش ماجرا رو اینجوری تعریف میکنه اونجا یه ملک توی شهرکی به من فروختن حالط توسط عیب. واسطه که مثلا دوستم همیشه‌دان میشدن بر حال پول گرفتن چک رو گرفتن ولی خونه رو خونه هم بود به من نشون میدادن ولی دیگه وقتی که ما قرار شد که جابجاش هم به, به اونجا به من گفتن که برو جون فکر کن پول تو دز برده و از این داستانا بعد دیگه از اون به بعد من افتادم تو داستان گرفتن پولم دیگه فکر باید. کن بنده خود علی صادقی نیست همیشه نقشای فان و کمدی بازی میکنه آه. اینه اینه که همونایی که پولش رو خوردن جدی نگرفتنش گفتم برو بچه بچه‌جون فکر کنم پولتو دوز بود فکر حالا این بنده خدا رفته شکایت و افتاده دنبال شکایتش بلکه بتونه پولشو پس بگیره که از قرار معلوم تو مراجع قضایی و دادگاه هم زیاد جدی نگرفتنش پروندم تو کل استان میچرخید نمیدونم هم چرا ولی هر جا میرفتم به هر حال باهم عکس می‌گرفتن دیگه از مسئولینی که تو اون طبقات بودن فقط میگم تو این دو سال من عکس گرفتم دیگه بعد هرچی هم که و هر حالاتی با این آقایم صحبت میکنم کنم اساتید که آقا مشکل منو یه جوری حل کنین وضعیتم بعد از پدرم مریضه فقط میخندن به من فیلم جه چی بازی کردی و <تصفح> بابا بنده خدا نیست این اینا نمیفهمن داره شوخی میکنه دیگه فقط میخوان واسه عکس و سلفی بگیرن ما همینجا واقعا عاجزانه از مسئولین محترم غذایی تقاضا میکنیم کارمندو خدا رو بندازن حتی ما هم بگیم که فایده نداره چون فکر میکنن ما هم داریم شوخی میکنیم دیگه بلاخره کسی که کار کمدی میکنن از این بدبختی هم دارن خلاصه اگه وکیل جدی سنگین رنگین کسی میشناسین معرفی کنین بلکه مشکلی من دو حل بشه باش فقط عکس نگیدن کارش را بندازن خودشو که ظاهرن نه کلابرداره جدی میگیره میگه فکر کن پول دز برده نه غریبا, عجیبن غریبا. مرکز شیرینی نگاه تو این ششایی سیاه تو مرکز مرکز لبخند مهرابون تو این همه سر تو مرکز مرکز شیرینی نگاه تو این ششایی سیاه تو مرکز مرکز لبخند مهرابون تو این همه سر تو مرکز و اما بریم سراغ خاطرات و نستلژی های توی هر گوشه این شهر دارم از عشق تو یادی بلانیه شماره 995 بدانید و آگاه باشید هرچند که داشتن خاطرات عاشقانه در ایام گذشته و در گوشه گوشه های شهر و دیار نشان از برداشتن چند هندوانه عاشقانه با یک دست دارد اما میتوان اینطور هم به ماجرا نگاه کرد که هر رابطه عشقی تپهی بوده که در زمان خود باید فت می شده لیکن همه ما در گذشته از تپه های مختلفی بالا رفتندگانیم امزا برای شنیدن خاطرات اشغی شما زنندگانه خودشان برای نوشتن کتاب خاطرات عشقیشان آماده هایه راژیو پس پس رودر و دیوار این شهر همش از تو یادگاره توی این کوچه تاریک منو تنها نمیذاره یاد حرفای قشنگت که تو قلبم لونه میکرد یاد دل تنگیه چشمات که منو بهونه میکرد دل من ها با تو کرده آخو جای نازنی این هفته ما از شما خواستیم که به ما بگین چه نوع انتظارهایی رو بیشتر توی زندگی تجربه کردین و انتظار انتظار چی اینکه راجع بود اینکه موضوع هفته قبل انتظار راجع به خاطره و نوستالژی قبل شد بگین خاطرات و نوستالژیهای خودتون رو اونهایی که باعث اذیت و آزارتون میشه با ما در میون بذارید و از کودکی از عشق ای ها تو خیابون تو جوب آب تو پارک سر کوچه تو فامیل عید نوروز چهارشنبه سوری همه این خاطرات و نوستالژی ها رو آماده شنیدنش هستیم اون تو روزای آخر خواستم از یه نوستالژی بودار براتون حرف بزنم اونم بوی نارنگی بفرمید. و زالزلک اون اوایل پاییزه که وقتی می بردیم مدرسه حالا نارنگی این تو فرنگم پیدا میشه ولی زالزلک رو بریت میدونم آخ خیلی دلم تنگ شدم چون یادی شفتدم گفتم براتون بگم خدا, خدا. گفتی نوستالژی بودار آقا فکرمون هزار را رفتا ولی نه راست میگه نارنگی واقعا نارنگی زالزالک من خودم شخصا خاطره خاطرش ندارم ولی خب آره بوی این زالزالک بوی نارنگی واقعا واقعا راسه چه نوستالژی بب الیو سارا که مشغول درس خوندنن الان قصد ازدواج ندارن راجب کامنت ها و ببینیم چه خبر از کامنت ها از امضاهای از بله بله بله بعدا رو گفت او مگه سر سفره عقدی ای بله میگی ای بابا بله رو بز بعد کار آموزی بود نمیشه دیگه از الان عادت کرده میگم بله خب آقای علی مدن نوشته بودن کامنت داده بودن که آهنگ تیتراژ اوشین، هانیکو و سرزمین شمالی و هنوزم گوش میدهم یه حس عجیب و غریبی پیدا میکنم آخه راست آه... آه... میگه دیگه یه چیزایی اصلا واقعا چی بگم خب خانم فاطمه امیری تبار کامنت داده بودن که یادش بخیر وقتی که فرشید ایران بود من هر شب با صدای رادیو واسه کنکور درس میخوندم همینجوری درس خوندم که آخرش این شدم فرشید جا میبین چه تصدیری داشتی روی آینده بچه بله. آقای حسین خلیری روشن یکی از دردناکترین خاطره تو سن شیش سالگی بود که خطنم کردم کردن آقای بره. راوی خاطرهایی که همه هست همه دارن یک بله شش سالگی فکرم خیلی زیاد. آره،, آره خیلی همه ندارن میگه. آقای راوی نوشتن که مسابقه هفته منوچه نوزری آخ آخ, آخ, آخ, آخ آخ یادش بخیر آقای داروش خاک بود در تلگرام برامون فرستاده بودن که از نوستالجی های من این بود که اگه مادرم تا تابه هم کتله درست میکرد به ما فقط سه تا دونه میرس <تصفيق> یادم چرا بوده؟ چجوری بوده کی میخورده یعنی همین دیگه نمی‌دونم خب خوب سارا جان واسه امضا رو می‌خونم خب امضای ما هم فرانک ام‌وای از کانادا، کامیل از جان جانان، عادل از اهواز، منوچ کومار از نجف آباد، نوید عاشق ترگل از اسوان چشم درست از شانگهای، سعید کرمانشاهی از لندن، یه بارم نشده اسم منو بخونین از اصفهان یبار هم نشد اسم منو بخونین اسمشونه از اسمها. آره، ولی خوندیم دیگه خیلی ممنون راه باتیرم بگین که تلفن های ما 2420 2212 2423 243 2226 و تلگرام ما بله خیلی ممنون و اما میتونید از طریق اپلیکیشن آیویس رادیو پسفردو هم با ما در تو بود بشین صدوتون رو برای ما بفرستید و یا برنامه های ما رو بشنوید در ساوندکلاد، اینستاگرام، فیسبوک میتونید ما رو فالو بفرمایید و برامون کامنت بذارید راژیو بیا بیاتا حتی اگه هم بمونی. Меч, я щапе даст, you خاطره ناقوسی است که هنگام جدایی به صدا در می آید جدایی از بطن، جدایی از عشد، جدایی از دوست، جدایی از کسانی که هیز وقت فراموششون نمی کنید آه. جدایی، یوهننا هستم از نارمش ببه، ای بابا، خاطره ناقوسیه که موقع جدایی به صدا در می آید البته بدیم آقا دشتی پشت ماشینش منویسه خیلی خوب بود، ممنون یوهننا جان خانم آقایون، دختر، خانم آقا پسرا بالا بریم، پایین بیایم یه بخش بزرگی از خاطرات تاثیرگذار و نوستالژی های ما رو نوستالژی آشقانه تشکیل میده در میون این خاطرات و نوستالژی ها عشق اول همیشه یه جایگاه خیلی خاص و ای داشته یعنی اصلا همه عشقای زمین یه طرف اون عشق اول یه طرف یعنی مورد داشیم طرف با یه پدیده مثلا تو های برتپیت درگیر رابطه عاطفی و عشقی و لافتر خوندن و اینا بوده اما همیشه چهره غلی هم جلوی چشش بوده بله ب... حالا غلی کیه غلی حالا یه آدمی بوده حالا 20 سال پیش مثلا وقتی تو کجا مثلا تو... بچه مدرسه‌ای بوده با چرخ دستی تو محله‌شون با قالی می‌فروخته بعد مثلا چون یه بار با قالی گفته قابل نداره خوشگل خانم این عاشق شده مثلا یعنی واقعاً این عشق اول چیه که از ذهن پاک نمیشه این چیه؟ جالبه که توتوی بیشتر عشقای اول که در بیاری میبینی با هر استاندارد یا با هر استانداردی که حساب کنی چه ظاهری چه باطنی طرف زیر خطه همه چیز بوده کلن ولی خب لام هر کاریش کنی بازم عشق اول محصوب میشه دیگه توی ذهن طرف همچین مثل آلپاچینو میدرخشه از موخا طرف بیرون نمیره که نمیره که نمیره الان فرشید جان یادم بابام یه دونه موتورگازی داشت بهش میگفتم رکس از این آبیا که تا تاششو میگرفتی هولش میدادی روشر میشه تمام اشمون بود بریم با داداشم موتور یه جوری قفلش و واکنیم بعد داریم بریم بیرون یه دوری بزنین یه سری آدم با دو سه تا از دوستام انداختیم از تهران رفتیم سمت شمال و این موتورگازی الان کی فکریشو میکنم میبینم چقد دلی داشتیم با یه موتورگازی سه ترکه انداختیم تو جاده چالوس و هنوزم زنده ام دارم خاطره راه واسه تو کنم. یادش به خیر یادش به خیر آره واقعا با اون رکسا فکر رفتن جاده چالوس این فیلم همسفر گوگوش هم بداموزی داره حتما کلی هم احساس به روزوسوخی بهتون دست داده بوده خیلی ممنونم از تماس شما برو بریم سراغ فری برز غریب. فری برز قریب سلام سلام سلام به هنگی فرشی جان فری برز خیلی خبر رو بود امروز توی ورزشاره تا بخاطر بخواد فرشی جان از خبر حکم اعدام بابک زنجانی میلیاردر نقصی که دستی هم تو پوتبال هم داشت و مالک باشگاه راه هم بود تا همین مصابیه یکیه که امروز تیمت مقابل ترکتور تو ورزشگاه آزادی دیگه... زیره... دیگه خواستیم دیگه خیلی ریانشه یعنی نه نه خاطر که خنبر فنی عشقیه وقتی ولی این تماشاگران حسابی ترقه بارون کردن سر صدای زیاد میذون جنگ واقعا خیلی زیاد بود جالب که جلوی چشمه ناظران امنیتی اتحادیه فوتبال اروپا که امروز مهمون فدراسیون ایران بودن و ناظران ای سی خدا به خیر کنه که میزبانی ایران تو آسیا تو خطر نیفته فرض دیگه دیدیم تراکتور خوب بازی میکنه گفتیم دیگه یه فرصتی بهش بدیم هم یک تام تمومش کنیم دیگه خیلی ازียดشون نکردیم آه. دیگه چه خبر مهم داریم از خبرهای مهم دیگه این وضعیت تیم نفت تهرانش تا فخ پیش همیشه یه حریف قدر قدرتمندی باشه تیم ها امسال به گفته علی منصوریان سرمربیش با بیماری فتی مدیرش روبرو شده حال روز خوبی نداره منصوریان هفته گذشته بعد از سکته و فوت یکی از کمک‌هاش اکبر دارستانی که خبرشو دادیم به خاطر اون فشار و مشکلات این تیم چندتا مساحه ای تند آتشین کرده در مورد بیتواقی مسئولان تیم نه اگه موافقی بخشی از صحبت هاش با سیما گوش ب. میش. حق طبیعه نفتی که بعد از 45 سال به این نقطه شکوفایی رسیده یه دفعه با ایده عزیزی که بیاد بگه صرفاً من اصلا علاقه من به ورزش نیستم من تعاملش زیاد ندارم و من فکر می‌کنم ما احتیاج به یه بستر ردیف بودجه کامل داریم برای آینده نفت نه صرفاً اگر علیرضا منصوریان اومد از فوتبال خوشش اومد پس به فوتبال رسیدگی میکنه اگر عزیزی اومد از ورزش خوشش نیاد پس شعب ورزش بعد خاموش بشه بابا اصلا که شیرینی‌های سیستم مدیریت تو ایران این مدیر جدید بیاد همیشه بهتر کنه سیستم عوض کلا شو جدی نگیرن مسئولها حرفای منصوری رو خیلی بنظرن آره واقعا همین جوریه فرشی دادن دیگه یه خبر بامزن بود امروز از کلی حواشی تو ورزش اون که ما همه جور رو داشتیم به حراست و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال میشن مثلا احضار مربی بازیکن احضار سرپرست یا مدیر الا احضار بوخچی بوخچی بوغچی رو برای 40000 کرد؟ بوخ بد می‌زده احتمالاً. چند روز پیش خبر داشتیم باعثی که سرمربی و کاپیتان یه تیم لیگ برتری فوتبال خدمت سربازی یه بوغچی رو خریدن. حالا امروز خبر اومده که این بوغچی برای اداء برای ادای پارهی توضیحات به حراست فدراسیون فوتبال احضار شده. آره دیگه بعد به حل توضی بده چه جوری بوغ زده که انقدر نون داشته توش دیگه مهمه. <تصفيق> بقیه بوخچه ها یاد بگیرن که چجوری بوخوزد ممنونم ازت فریبورز غریب باید خدافزی می‌کنیم تا فردا خدا نگهدار، تا فردا با سلام و کسیه یک شمب شب راب زمن ابراز حسل سرفتگی به خاطر مطرح شدن مجدد وعده احیای دریاچه ارومیه در ده سال آبگانده با مروری بر عناوین مهمترین قبرهای امروز و امشب آغاز می نماویم شکست اصول در انتخابات به خاطر مطرح شدن لیست انگلیسی اصلاح طلبان بر اساس گفته های محمد رزا با نظر کاشناسان که باز شما خوب قبول داری رفیقای اصول گراد که حتی قبول نمی کنن باختن اظهار نظر معاون بانک مرکزی مبنی بر ادامه ایران هراسی در حوزه که بانک و توصیه ناظران که خوب می قبل از معامله دو تا که از تلگرام برای بانکای خارجی بخونین ترسشون بریزه و اعلام آماده باش برای استقبال از 12 میلیون مسافر نوروزی در استان مازندران و درخواست فعالان عرصه محیط زیس از مسافران که ویلا و کت کت کباب و عرق رو پاس بدارید ما به محیط زیس لطفا تجاوز نکنید مهمترین سرخط های خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکارم بلی بلی سلام. سخنگوی قوه قضاییه امروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار که ازو پرسیده بود آیا جلوگیری از خروج محمد خاتمی از منزل برای شرکت در عروسی دختر میرحسین موسوی با حکم دادستانی بوده؟ گفت بله، این امر به حکم دادستان صورت گرفته و در موارد بعدی نیز به صورت مشابه تصمیم گرفته خواهد شد. بر همین اساس و طبق اعلام یک مقام ناس در دفتر دادستان تهران همکنون به طور پیشگیرانه ای احکامی در این مورد صادر شده است و به عنوان مثال اگر آقای خاتمی قصد داشته باشد برای مراسم پاتختی پاگشا و باقی مراسم این چنینی از خانه خارج شود احکام صادر شده اجرا و از حضور ایشان در این مراسم جلوگیری خواهد شد وی هدف داستان تهران در این زمینه را جلوگیری از فتنهگری ایشان دانست و یادآور شد همه فتنهها ها از همین عروسی ها و عقدهای فتنگرانه شروع میشوند. پایان محروه اخبار بله با تشکر از توجه شما تا اومشبی دیگر و برنامه دیگر و بل دیگر خدا نگه دار خیش تموم شدینم ای با من کاری نداری آقای میکروفون تلا چرا کار دارم بل چرا بله ولی بفهمی. ب میگم اید شما چیکار میکنید بول بول؟ ا والا منو دکتر قصد داریم یه سری مطالعات عقب افتادمون ادامه بدین. ها خیر خیلی خب جدی پرسیدم میگم می چیکار میخواد بکنید ایدو. میصل. خب منم جدی گفتم دیگه. یعنی یعنی اید میخواد بشینید تو خونه مطالعه کنید واقعا؟ آره والا. اه اه. خیلی عقبی ما میکروفون حالا من چی بگم الان یعنی جایزه نوبل داغون تری زوج سال بعد بدم به شما دو تا دیگه مایی بگون می‌خاستم بگم بیایم اید با هم بریم شمال بابا ببخن... دستتون درد در نکنه ولی رو دکتر فکر می‌کنه آدم باید از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنه باشه باشه با بره بره بابا تا من حالم به هم نخورد بره ای خوب دارم میرم ولی این برخوردتون درست نیستا میگم یعنی زودتر بولو به مطالعه برسی اقب نیفتی دیگه بل بل با دکتر بله باشه خدافظ خدافظ جا خدا یعنی همه همکار دارن ما هم همکار داریم نوه نتیجه انیشتن آوردم اینجا برام کار کنی اید مطلعه میکنیم اح, اح, اح حالا بد شد. سلام دو تا نوستالژی دارم که فقط و فقط برای خود رو میگردم یکی دگر خوردن تو جاده هراز روبروی ۲۰ آولی دومیش دو آش خوردن تو جاده چالوس پشت رو کندوان وحید هستم از تکزار آشو نگو وای وای با. آش دو آش رشته پشتتونم کندوان وای وای آقا ما کلا ایرانی ها از سیم خاطرات و سیم نوستالژیمون یه سرش به واسطه به معده مون همیشه خداش نوستالجیش یک کمی رو نمیشه نادیده دیگه رفت دیگه شما گم. اما ارز و حضورتون که توی فیسبوک آفا گفته خاطره دزدکی و قاچاقی رفتن به ایران یک ما تفریح و حال و ایران گردی بعد از مرز داشتیم میرفتیم با قاچاق چی؟ یهو یه پلیس چاق جلومون ثبت شد چی دیگه با 50 دلاری حل شد خیلی باحال بود این اون فیلم هندی بود. پلیس قانع بوده لب مرز گرفتتشون با 50 دلار رضایت داده و دیگر حضورتون که آرزو، گفته نمیدونم چرا هر چیز نوستالجی که باعث دل گرفتگی میشه حتی سراغ آلبومام هم نمیرم ای بابا مشکل از دلتونه دیگه شاید با مرور هر خاطرهی حال میگیره دلتون و دیگه دیگه یه دونم از توی انستاگرام ام ام ام 66 گفته یادم سال 89 که تازه از ایران فرار کرده بودی فرار کرده بودم من اولین برنامه‌ها با رادیوی دروداغوش می‌دادم به چه بدبختی الان با تلگرام خیلی راحته یادش بخیر بله حالا دیگه چند سال دیگه که تکنولوژی بیشتر پیشرفت می‌کنه یاد همین روزا میافتی میگی سال 94 مثلا با تلگرام دروداغون برنامه‌ها رو گوش می‌دادیم الان به صورت زنده مثلا چه می‌دونم به صورت اودی داری برام برنامه اجرا می‌کنی سال دیگه میگن در آینده بله. سلام می کنم به اماتون این تیریپ جدید برنامه خیلی جالب شده به نظر میرسه که هر کسی سیم میکروفونو رو میکشد و خودش چیزی ب میکروفون و سط مونده بین جا به این خانم آقایون جابجا میشه بخشیت آمزه بود حس جالب بود. برای همطور آرزی موفقیت سلامتی دارم هم اماتون گرم ممنون اررشاس هماسیته. بله خیلی ممنونم ارشیا جان دیگه بلخره این دیگه دیگه فضا کمه و جا کمه اعمال زیاد بچه های جا نمیشن اینجا همه به همه رو زمین نشستن اون گوشه همه کنار دیوار کنار در جا نداریم سندلی نداریم اون رو میز نشسته مرسا دیگه اینجوری میشه اشکال نداره ولی فضا دوستانه است فضا دوستانه است دمتون گرم به خاطر تماستون اما برو اصولاً قدیمی اکثر نوستالژی های عاشقانه شون به یه کوچه که یه درخت توشه و جاو و عطر و بوی یه دلدار دقت کنید عطر و بو و یاد یک دلدار توش مشخص نه خود دلداره نیست اینه که اصولاً قدیما خاطر بازی های عاشقانه اونجوری که استاد مشیری تو شعر معروف کوچه گفتن به یه کوچه ختمی شده وقدیما پیدا کردن مثلا دوست دختر یا دوست پسر این راحتی ها نبود مثلا الان که پسرا بعد کلی سر پا سر کوچه یا جلو مدرسه وام ایستادن که بالاخره شخص مورد نظر از مدرسه یا خونه بزنه بیرون که بتونن با یه متلکی نگاهی لبخندی چیزی بشه ابراز علاقه کنن اگر اگر خانم مورد نظر مثلا سکوت به همراه یه لبخند ملوس مثلا یا با یه لحن مثلا کشش داری مثلا اینجوری می‌ساینطوری جواب کوتاه به مطلب تلگ میداد مرحله اول که بهش مرحله مخزنی هم می‌گفتن تم می‌شد میرفت مرحله بعد که یکی از سخت‌ترین مراحل بود این مرحله بعد یعنی چی رسوندن شماره‌ی تلفن به دست کیس مورد نظر آقا خیلی وقت‌ها نشونه‌گیری اون که کاغزه از جانب دلباخته و برداشتن هم اونتی که کاغزه از رو زمین از طرف دل داده حالا یا دوستش یا خواهر کوچیکش اینا از هر نوع عملیات انتحاری و گنگستری سختتر بود مرحله سومم با تماس گرفتن بود خب خب. برای اینکه این دختر خانم نشون بده که خب خیلی دختر سنگین و آفتاب مهتاب ندیده یا خب بلا فاصله که تماس نمی گرفت که دقت میداد آقا کمه کم یه دو سه روزی فاصله می بعدن که گذشت و اینا همه مثلا چند روز گذشت با بررسی تمام جوانه به امنیتی و اطمان از اینکه حالا کسی خونه نیست حالا اگر هم ح سرگرم کاری متوجه اون نیست اون وقت بود که به بهانه تماس با همکلاسی یا مثلا دختر اینا شماره رو وارد میکرد و این تماس آغاز یک دوستی عاشقانه میشد خلاصه میبینید که ماجرای خاطر های عاشقان قدیمی ها همون در حد کوچه و پارک و شما تلفن این اون هم کیوس که تلفن خیلی وقتا خیلی وقت تو خونم تلفن نبود که البته خب از هر کدومشونم بخوای از این خاطر را برا تحریف کنن و ایدنیسی آهی بکشن یهو بگن بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم بی تو مرتب شبی با آغازان کوچه گذشتم شدم خیره به بال تو دیدار تو لبری شد در جام شدم دیوانه به خاطر خود و از این پیرمرد پیرزنایی که تا یه زوج جوون میبین شروع میکنن از خاطرات عاشقانشون تعریف کردن حالا تا اینصد پیشش داشتم منغرور میزدن و امروز اتوبوس تو هم همین شد یه پیرمردش به خنمش نقام میزد که چرا یه کیف مخصوص پول اتوبوس در نظر نمیگیره که مجبور نباشه 5 ه یا ای دی رو بده راننده پیرزن هم داشت بر خودش سییر لب غ قور می چی میگه یه, یه دختر پسری دست در دست از در وسطی سوار اتوبوس شدن همینطور که یکی تو مردمونه باستاده بودی یکی تو زننه وز به همون گرفته بودن که رو عاشقانه خیره بودن به هم کللا انگار فقط همون دوتا بودن تو دنیا خلص پیرمتد پیرزنه در یک آن قور زدنو و بیخیال شدن رفتن سمت هم عین اون دوتا دست همو گرفتن و پیرزنه رو به دختر گفت به منو یاد جوونی و عاشقی کردن خودم انداختی پیرمردم رو به پسری آهی کشید بعدم چشم در چشم خانمه شده خوند عاشق من یعنی خاطرات عاشقانه خوب به کار آشت تی دادنو تل سیف او ببین ببی اون کلاغه رو ببینی آره میبینم چطور کلاغه دیگه اون کلاغه ماده است تو از کجا میدونی آخه حالا حالا اون یکی ببی کدوم یکی نه اونها اون شاهراشه اینا چند با هم به مشکل بعد یه کم داغون شدی یا بر؟ جای خاصی بستری کن یه مدت بهتر شو شد ناسی کلاغشناسی واسه من ببی من امارن کلاغنره رو دارم میرم پارک بغلی با یه کلاغ ماده دیگه گرد میگیرم باهاش بهش بزن من بزنم این کلاغا رو صافی کردی منو تو باقیمه نکنه ماتش ده یک کم شب می‌نای. کی و منو به هم نرید نکن. این حساساته. جان چقدر بدم میاد از این جانورد بگه گمشه چقدر تو زبون نفهمی واقع صدر آمد به کلاق بابا ساکت شو بابا از دست تو ببین من نمیدونم چه این روز همش خاطر خاطراتو گذشته سیر میکنم خبیش الله میخوای بیافتی ببینیم ما راحت چیم پس نه بابا چی میگی تو یه زمانی همه دخترای محل آشق من بودن آره بام در کدن قیافت واقعا برازنده بوده جون خودم بن، بابا دفن تو کلاخشو پی ببین ببین یعنی هر گوشه این محل کی میرفت، یک داشت از پشت پنجره زاغ حمو چوب میزد. ای دل غافل، ندونستم قدرون اون دوران. آجاب، از همون موقع ها من با خودت صفا میکردی یا بعدال اینجوری شدی؟ <laughs> <laughs> سرت بلند نظر رو یادت سر کوچه فخری میشه آره، یادم چطور مگه؟ یه بار منو صدای کرد دم خونش اون هم بغل تیر برق واسطه بودی. میخواد میخاست قله بجری بره بالا تیر برق. نه بابا به گفت جوون دو دار هیف میشی دوست دار داماد من باشی؟ نو بارای فیلم سینمایی دا تعریف میکنه. خب چی گفتی بگو بابا؟ گفتم شرط به احترام شما واجب ولی ازدواج باو منو میبنده. بابا. من مرغ طوفانم. اینو بختیار گفته بودم نه بابا بختیار از من یاد گرفته بود دیگه. عجب بابا هنی فکر کنم همین سرتیب بهش رسونده بود. خب پس به شرطیم جواب رد دادید. آره دیگه جوون مودم کلم باتت. ببین مطمئنی میخاست دام والداش بشی؟ من میگم شاید گماشتای چیزی میخواسته آره بابا ایشو میبینیم منو ببینم دارم واسه چی خاطرات عاشقانه‌م تعریف میکنم من میرم سر قرار برو بابا برو حالا من با هدیه تهرانی قرار داری نه با هم خانوم تو قرارداد دارم عمو خالو من واسه تو ترهم خوردم که زنده بود بعد بخ برو ببینیم دور شدی کلاقه بعد من مطالعاتم اه. ادامه بده هم, بیا. هم, بیا. هم از بس که ما Niye baba hier? Sapta yok yok. Sapta sabahın ön mendedin, akter mazibimdedi. Bir یادش بخیر موقعی رفتیم و تو دریاچه ارومیه شنا کردیم. و کلی نمکی می‌شدیم چش و چالمون میسوخ آب می‌رفت دهنمو بعدش هم ما کلی خیار در دم میکردن گردن نهایتاً کلی خوش می‌گذشت واقعا یادش بخیر واقعا یادش بخیر بله خیلی ممنونم من آقا اون بخش خیارشو نفهمیدم میرفتن می دریاچه ارومیه شنا می‌کردن نمکی می‌شدن بعد خیار می‌مالیدن بهت چیکار می‌کردن با خیار یکی توضیح بده سعید تو می‌دونی تو که به حال اون سمتی به اون که آره، آره، آره، آره. ن... بعد بر... شناکه میکنیم ممکنه بره تو چشت اه. آه. تنها چیزی رحبت که رحبت. میتونن به خودشون ببرن یه خیاره هر, هر جای آب وارده چشم شد خیارو میشکونن و میزن روی چشم تا ممنده. سوزششو برطرف میکنن جالب نمیدونستم خیلی ممنونم از تماس شما اما خانم آقای این دختر خانم آقای پسرها ما توی این برنامه توی یک دو سال اخیر خب از فرمایش‌های گوهربار آقای نادر قاضی نماینده ارومیه توی مجلس زیاد فایل صوتی پخش کردیم چون ایشون هم به سهم خودشون حرفای چمندر قیچی خوب زیاد زدن ولی ما تا حالا فکر می‌کردیم آقای قاضی پور اصولاً یه نموره مثلا شیرین احوالن فقط و به همین دل حرفشون سوژه میشه اما با یک فایل صوتی و تصویری که اخیرا از های انتخاباتی ایشون بیرون اومده مشخص شد نه تنها ایشون چینه‌وال هستن از نظر فکری هم متاسفانه در قرون وسطا به سر میبرند. جوری که آدم میمونه از نظر فسیل فکر بودن ایشون آیا مثلا از آقایان آقایان مثلا رسای کوچک‌زاده جلوترن یا اونها جلوترن حالا ما یه بخشی کوتاه از حرفشون رو که البته به زبان آذری هم هست پخش میکنیم بشنوین بعد سعید قره برامون ترجمه کنه خود کیفیت صداش هم بده. سعید می‌تونی برامون خلاصه بگی؟ آره، فشن سال قاضی‌پور. بخش عمده‌ای از حرفایشون به خاطر رکیک بودن اصلا قابل پخش توی رسانه نیست، ولی اون بخشی که قابل پخش هم دسته کمی از قبلی ها نداره. مثلا ایشون فرمودن که مملکت را به آسانی به دست نیاوردیم که هر روباه و بچه و کر خیلی عزم میخوام واقعا که اینو من مجبورم به زبون بیارم. بفرستیم اونجا مجلس جای همون کلمه نیست مجلس جای زنان نیست جای مردان است بفرستید سرشون بلا بیاورند آبروی برود بله یه جوری که ما واسه هم بخوایم بکنیم نمیتونیم البته یه بخشای خیلی زیادی بود که اصلا کلن نمیشه حرف صد راجه بهش من نمیدونم چی بگم های قاضی پور که حسابش معلومه خب دیگه اینا واقعاً آقا باعث مملکت ماسک ایشون با این تفکراتی که داره، الان هشت سال توش نماینده مجلس برای چهار سال دیگهم شده، یعنی حداقل دوازده سال توی مملکت این آقا نماینده مجلس بوده که در مورد خانومها همچین تفکراتی داره. یا مثلا ایشون در مورد مردم قزوین و نماینده سابق این شهر توی مجلس خب حرفهای میزنه که آدم کبود میشه از خجالت. ولی جالبه که یه دسته آدم هم پای و عضویشون هستن، برایشون حورام می دست میزنن. جالب همین این آقای غازیپور به خاطر برنامه فیتیله ها چیزی نمونده بود جنبش ضد فارس را بندازی توی آزروائی جان راستش ما خیلی تلاش کردیم با این ماجرام شوخی کنیم ولی خواهی این حرف را لامصب هر کاریش کنیم آخرش غمه یعنی اصلا غم... غمگینه غمناکه چی کنیم با آقا تو هشتاد میلیون جمعیت این همه آدم رو کرده با شخصیت با حال از تو همون ارومیه این همه آدم با حال با, با شخصیت و تح... من بعد نموینده مجلس بعد بشه آقای قازیپور قاضیپور که چاید قاتیپوره بس من چی بگم والا مجده مجده قابل توجه کلیه اشاق و کسانی که عشق آتشین در سینه دارند اگر نگران این هستید که روزی بر خاطرات و ماجراهای های تان مبار فراموشی بنشیند اگر میخواهید یاد و خاطره ی عشق اول خود را همیشه تر و تازه و زنده نگه دارید اگر تمایل دارید که تفکرات عشقی و عاطفی خود را با تمامی مردم شهر در میان بگذارید با مؤسسه نوستالژی پروران راه عشق تماس بگیرید چاپ پوتو دیدن با اشبرنگه پشتوانه پشت کامیونی، پشت اتوبوسی، پشت موتوری، و سایر پشتها، قاوی اشغال و جملات عاشقانه و زیبا با متن دلخواه شما. زیبارویان بیوفایان، صدمز نگاه اولتو مرا در یا زندگی چپه جای. انجام انواع تتوهای متنی و تصویری به یاد عشقای همیشگی و خاطره انگیز در نقاط دلخواه از بدن شما. ووی داداش قربون دستت همون برج تتو کن ترم هست به اثر فرج و سعادت خیلی زیاد. قر کردن و تغییر دادن تتوهای قبلی و انجام تتو جدید. ببخشید این تتو که چمهای پیش اومدم دور نافم زدی نشه من کامبیز میشه این بیزش رو پاک کنیم بعدش الف و نون بذاریم بشه کامران مرسی و کندکاری لحظات و خاطرات عاشقانه زندگی شما بر تنه درخت، دیوار، تیر چراغ برد، کف رو و سایر مکانها برای سبت در تاریخ با مؤسسه نوستالژی پروران راه عشق تماس بگیرید و خاطرات عشقی خود را جاب دانه نمه. مؤسسه نوستالژی پروران راه عشق کارونی مو از خود آدمی است که می‌خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند. کامران ملکموتی سلام چه خبره؟ سلام فرشید جان سلام همگی کم کم خبر اکران فیلمای نوروزی داره میاد امروز اولین فیلم اکران نوروزی گروه،, گروه هنر و تجربه اعلام شد که فیلم فصل حرس به کارگردانی لقمان خالدی و موضوع فیلم هم در رابطه با فردی به اسم قاسم که مدعی کشف داروی سرطانه بخشی از صدای فیلمو بشنویم تا بعد من بیشتر توضیح بدم بشنبیم. این جلوتر از زمان و کی بهتون مشخص میکنه که جلوتر از زمانی؟ خودت ساقه میفهمه. آیه تکلیقان خدا کنه آدم مریض نشه وقتی مریض شد به هر جای دست میزنه که نجات پیدا بکنه این اصل داروه آیه دلدار من اتقاط دارم این مسئله درمان سرطان متاسفانه در طول تاریخ مدعیان بسیار زیادی داشته میخوان به نوعی تصاحب کنم این پروژه را چطور من اعتماد کنم ا بله بخشی از صدای فیلم فصل حرس به کارگردانی لقمان خالدی رو شنیدیم. خب میگفتی که این فیلم fashion توی جشنواره سینما حقیقت برنده بهترین فیلم مستند جشنواره شد تو جشواره فجر هم تو پنج رشته نامزد دریافت جایزه بود که متأسفانه چیزی نگرفت البته. بسیار موسیقی چه خبر؟ الو با نزدیک شدن به ایده نوروز خواننده ها قطعات یا آلبومی رو به عنوان همین مناسبت منتشر میکنه یکی از این آلبوم ها کار جدید سالار عقیلی و پیمان سلطانیه به اسم عاشق میشویم که به عنوان ایدی از امروز تو سرسر ایران منتشر شده عقیلی گفته امیدواریم در ایام تعطیلات مردم این هدیه ما رو بخرن و گوش کنن چند تا از این ترانه ها سازی یه سری آهنگای که خودش بسیار خب مامالو یکی از همینا مفتی مفتی فعلا میذاریم ملت حال گوش کنن بدران بخرن و گوش کنن من, من, از... من پولش من پولش دادم دادی پولشو باش خیلی ام. ممنون <تصفح> <تصفح> تا فردا باد خدافظی می‌کنیم تصنیف آتش دل با صدای سالاره عقیلی رو می‌شنید تا فردا خودمو نگهدار آتشی در سین دارم جا و نامش زنده گانی را کن که از غمات جانی سپارم بیش از این من طاقت وقتی اجرا ندارم. برداده برداده پیش خوب. روزنامه تجارت به نقل از نخست وزیر ترکیه در دیدار با رئیس جمهور ایران تیتر زده بود که ایران مخزنی کشف نشده در حوزه توریسم است خب اتمالا با این سیاست های آقایون یه 50 سال دیگه هم همینجوری بکر و کشف نشده باقی میمونه دیگه آبه. یکی از تیت های امروز روزنامه جوان این بود 150 میلیارد تومان سود قاچاق میوه به جیب چه کسانی رفت خب به حالا یه جو تیت میزنن انگار مشخص شده مثلا سود باقی قاچاقا به جیب چه کسانی رفته و همین یه دونه قاچاق میوه مونده روزنامه خراسان به نقل از آقای حدداد عادل امروز تیتر زده بود که همه ما از رسیدگی به مردم غافل شده ایم مردم از رسیدگی به شما به خصوص توی این انتخابات اخیر غافل شدن اینه که خودتا اذیت نکن این به اون ده. و روزنامه وطن امروز از غلایت الله وائز تبسی که به تازگی مرhum شدند تیتر زده بود که سران فتره، فتنه بند. لا نوخ وقت این نقل قولات سران فتنه مهاربن یه تیتری بزنین لاقل مردم میخوان می یه فات میخونن یه فاتحه نزار روحشون کنن عجبا طب 995 هم کنار شما تموم شد شاعر میگه در ازدهام سردرگم این بیراه های بیانجام کو جادهی که مرا به دیروز به تو بازگرداند کاش در سیلان بیامان زمان میشد حتی برای رو به پشت سر روبه خوابهای نیمه کار بازگشت جایی که آینه های شهر در قبار خاکستری این روزها گم نبود جایی که نفس خیابان در انتظار محال عبور تو بیهوده به سینه حبس نمی شد خط زن. انه ها آبابه یه شهر گم شده تو دود راوی خاطر ها زخمی پر نوستانشی روزای کبول پر بخزن پر بخت تا انتظار انتظاری عباس و پوچ و انتظاره با تو هم سفر شده دوباره میون جده شما جلم پره بیا بزم با هم دیگه بریم سفر جای ما جا خالیه منو ببر منو ببر یه عمر جده شما منتظر عبور ماست نمیدونه یکی از اون دو تا غناری بیشدار